به این آیه شریفه نگاه کنیم که به پیغمبر اسلام بیان میکنه قل رب زدنی علما ای پیغمبر بگو پروردگار من علم مرا زیاد کن خب این دلیل بر نعوذ بالله نقص پیغمبر اسلامه میخواد بگه یعنی علم من کم خدایا یک نوع نقص و ناروایی دارم یا قضیه غیر از اینه مرحوم علامه طبع در المیزان وقتی این بحث و مطرح میکنند یک توضیح بسیار زیبا و قشنگی دادن من اشاره می به بحث مرحوم علامه چون جواب کافی رویشون دادن حالا با یه بیانی بنده خدمتون اصلا آیه رو بخونیم آیه چیه؟ یه تیکه آیه رو نگیرید قسمت قبل و بعد آیه رو بگیرید با توجه به اون انایت بکنید به این قسمت چیه؟ سوره ها آیه ظاهرن صد و خورده یه حالا آیه صد و چنده 188 بکنم باشه حالا دقیق سمارهش نمیدونم ببینید و لا تأجل بالقرآن من قبل ان یقضا الیک وحیهو و قول رب زدنی علما اصلا این آیه داره عظمت پیغمبر رو میده عجیبه دقت کنی. این برداشت من از مرحوم علامه تبا رحمت الله علیه از المیزانه به شرده فرمایشیشون دارم خدمتون میگم ولات ها به بالقرآن عجله نکن در قراعت قرآن در بیان قرآن یعنی چی؟ تفاسیری شده مراجعه کنید. جبرائیل وقتی از طرف پروردگار میومد آیات رو برای پیغمبر قراعت کنه، بخانه که پیغمبر این آیه رو به کتاب وحی بگه که کتاب وحی بعد بنویسن اول بین جبرائیل و پیغمبره بین خدا و پیغمبره بین فرشته وحی و پیغمبره بعد بین پیغمبر و کتاب وحی اون معمور میاد برای پیغمبر بخونه هنوز نخونده پیغمبر داره میخونه آیه داره عظمت پیغمبر رو میگه میگه خیالی کردی من هارو نمیدونم لذا یک بحث دارن در عرفان اصیل اسلامی خیلی زیباست وای که ما رو از این دور نگه داشتن قرآن تجلی باطن پیغمبره قرآن تجلی باطن ولی اللهه عظمت عالم به ازن الله جلوه باطن ولی اللهه مرحوم علامه توجه به اون بحثا داره که میاد در زیل این آیات میگه شما آیه رو نفهمیدی وقتی جبرائیل داره آیه رو برای پیغمبر میخونه پیغمبر سبقت میگیره خدا بعد به پیغمبر میگه وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرْآنِ اجل من قبل ان یغزا الیک که وحیو قبل از این که وحیش به تو برسه یعنی قبل از اینکه این فرشته وحی رو به پیغمبر اینو میدونه مگه آیه نمیگه پس آیه رو برای ما معنی کنید آیه چی میگه من قبل ان یغزا البته مرحوم علامه این هم کردن توضیح فرمودن فرمودن بعضی‌ها میگن که چون قرآن دو بار بر پیغمبر نازل شده بود یک بار در شب قدر به صورت کلی پس پیغمبر همه رو میدونست حالا جبرایل که میاد داره میگه پیغمبر اطلاع قبلی داره خب اینم شما بگید پس پیغمبر قبل از این که جبرایل آیاتو بیاره قبلا گجا خدا به قلبش داده که در شب قدر چند سال قبل این ما کردیم ان انزلناه فی لیله القدر یعنی چی یعنی یک باره ظرفیت و سعه وجودی توی پیغمبر در شب قدر به ای بود که همه حقایقو گرفتی همین این اشاره رو بکنم چیو گرفتی قرآن یک جا قرآن چیه لا الا فی کتاب مبین لا و ولایا این آیاتم ببینیم تا بعد اون آیاتم براتون بخونم پس اون آیه میاد میگه من نمیدونم یعنی چی فقط اجمالا بگم میخواد بگه منهای خدا هیچی نمیدونم بله منهای خدا هیچ نمیدونم ولی خدا به من یاد داده خدا اینا رو به من وحی کرده خدا منو برگزیده خدا همه این عرضش ها رو به من داده همش میخواد خدا رو به رخ بکشه که مردم اشتباه نکنی حالا میرسیم به اون آیات اینجا دقت کنید. اگر قرآنی است لا رتبن ولا یابس الا فی کتاب مبین هر و خشکی نیست که در این کتاب آشکار شده در این کتاب وجود داره و به همین دلیلم تو پرانتز بگم حالا تو بحث روایتی بعد بحث میکنیم به عقیده من و شما یه شیعه بعد از ظهور وجود مقدس امام اص علیه صلات و سلام از آنچه بشر در کره زمین تا زمان ظهور امام اص آوردن دو تا از بیست و اون بیست و رو که امام میاره میفرماد همه تو قرآن بود ولی کی بود که از قرآن در بیاره؟ همه تو قرآنه لا رت بن ولا یابس الا فی کتاب مبین تر خوشگی نیست مگر در این کتابه؟ خب این کتاب چگونه است؟ پیغمبر قبل از که جبرائیل براش بخونه خودش داره میخونه و لذا در آیه دیگری که حالا براتون بحث میکنم بل هوه آیاتون بینات فی صدور الذین اوتول علم فی صدور الذین اوتول علم حالا اون آیاتم میرسیم قبل و بعد شو میبینیم فقط اینجا برای تکمیل این بحث این آیه رو دارم میگم بلکه آیات بیناتی است که در و سینه فی صدور سینه‌های الّذین کسانی که اوتول یه عده هستند به اونا علم دادیم این آیات تو سینه اوناست، لذا لزامیر میگه من قرآن ناطقم سلونی قبل ان تفقدونی